اینا اینا الله مطرح در شد در دنیای اسلام توسط متکلمی و به خصوص معتظره مطرح شد و درباره تعبوده به خبر بود نه میکنه تعبوده به زن ولکه خبر و خبر واحد و زنی میدونستن این آشی مثلا به به زن به در اول وقت خبر خبر رو میانونده میگفتن مایو آرامو سببخ مایو و مالا یاردن صدق او این اوکز بود لیکن یعقل صدق اینجوری تخصیلی وارد این بحث شدن که از ترین مهمترین قسمت بحثش هم دست معتدهه بود که شعبه ایجاد کردن که تحقیل بزن امکان نداره اقلا این ها اصلا موقعا امکانه اقلی و این خوبه یعنی باید که ذهن ما بحث خیلی روشن باشه یعنی یه مشکل نداره ذهن آدم اچرن اینطور میاد به حال مرحوم سید مرتضی در در این مش خوب پیغمبر که بگی مردم حرف هر من گوشین من هر چیزی که گفتنداری اگر مثلا بحث این ما ابوذر را بخوان داشتیم چه مشکلی ایجاد میکنه مثلا چیزی درست میکن چه خاصی رو ایجاد میکنه که <تصفح> انسان مثلا بیگه اینه اقلا ممکنی این <صفح> حضوره خیلی واضحه یعنی امهام خاصی نداره من که کله توی کتر و حصول مخصوصا کسانی که دنبال این بحث‌های اهل گرایی بودن این بحث خیلی به شدت مطرحه یعنی سهر محتضا در کتاب دلیعه در این چاپی که شده من چاپ صادره کنه چاپ برسی که تو در جل دومان برسر اخبارشون داره بیمارشون میگه این خیلی طولانی یه حرف سنیا و شیعه ها ایشون مثلا هفت وجه ورده در اینکه که عقلن جایز نیست ترواده بزن محمد هم جواب داده یک دو سه قاعد باید یک دو سه جواب داده که خیلی طولانی بحثه طولانیست خود سید متضا قاعد هست که عقلا ممکنه لیکن شرعا واقع نشده منتظر و منتظر نظر مبارکشون بینه که تحبود به خبر واحد عقلا ممکنه و که واقع نشده خب مشهور علمان شیعه که هم شیخ ابو جفتر سوسی اینشون میگم در هم واقع شده که این ساعت رو بحث خبر واحد بیژا شیده نیست برای شده کلام شیخ و سید منتظر و بچه چندی که از همه مواجه به این دوزار باز برمیدن اینشالله اونجا ارز میکنین و توفیلات کافیش اونجا ارز میکنین که هدف شیخ چی بوده در ادعای اجماق احمد اخبروانه به هر حال این مسئله از در این مسئله معتدله پیگیری شد در کتب احلسانه مخصوصا اینهای که کمباهی عقلی دادن مثلا این توشنجاره. توشنجاره. توشنجاره. توشنجاره. توشنجاره. که تا فخر بازی در حصول توشونم داره توشونم متعرض شده مجموعشن که در روز از احکام آمدی اتری دیازشون میداری سهر معتضاداش ایش ایشان مفصل متعرض شده و رفت کرده و این مسئله بعدها بعدهایت زمان شیخ در کتب ما, تو بحث ما توی بحث وجود خبر مفرد شده اما بیشتر اینجا مثل آرخوی و دیگران توی بحث ترک بوده بزن مطلقا و به تغییر مرمو خویی دو تا اشکال اساسی هست یکی ای این که تحلیل حرام میشه یعنی دو جور اشکال شده دهایی که میخوایم خوب کسی بکنید بکنی، این از این اشکال بیاین. سه کاری که شما باید در داده که وقتی موزه نیامده، ما خوب به تغییر ایشان اشکال رو ایشان به دو اشکال برمیگردن در خانه ایم که آماده اشکال اینه که لازم میاد یعنی یک اشکال باتری یه مساله و ملاکات مساله و متفاوته یا ملاکات اگر ما رفته بودم ملاکات یک کاری به معدداری زن نداره به خبر نداری کاری به اون جهتش نیست یعنی کاری این نیست که حالا مثلا خبر واحد آلد سباییت شوشی نه این ملاک اینطور میشه یعنی به عبارت اون اخرا چون آلده به ملاک هستی و خبر رو برش تقریبیت میدونی خوب دقت کنیم خب این بزن حالا خبر مهم نیست. مهم نیست مهم نیست که این که معرضای خبر میشه یا تفریح واقع میکنه یا نمیکنه یعنی یا تحلیل حرام میکنه یا حلال میکنه جا به جا میکنه احکام یک اشکال یک اشکال دیگه منوی این است که وقتی خبر قائم شد حکمی از در مویان این حکم واقعی, واقعی چه نصدادی داره پس کلا اشکال این اشکال رو در کلمات ما توالمای حسانت میزونه که استودگاه کردن این اشکال د یعنی به عبارت خندیتر بخواهم بگم ولو خلیم اصطاق بستر هم اردن ما میتونیم اینطور بگیم خبر یا تریخ صرف یا موضوعی هم دو بگه خیلی دیست تصور نمیشد یا ترید صرف اگر ترید صرف شد یعنی خبر جهر بک نشد ترید خبر ترید صرف خبر بک هرام در واقع هلاله کنمیم تحقیم حلال میشه این اشرایتی دید اما اگر دیگه نه خبر موضوعیت هم داره یعنی خبر جهل میشه تا اونجو به جهل نظر نداشت طبق این خبر جهل هم میشه یعنی اگه خبر با حرامه یا با خلاله، با واقع با حال خودش محضوزه وقتی این اشکالی کشی که اگر طبق خبر جهل بشه اگر خبر این واقع باشه اجتماع نیسته میشه اصلا در واقع حلال بوده خبرم میگه حلال میشه اجتماع زده. در واقع حرام بوده خبر بگه حلال میشه اجتماع زده در کرد اشکال دو زاویه داره یه زاویه ها نلاف رفته اونی که من در کتب احر دیدم بیشتر رو ملات رفتم همون تقریف مسئله و اینجور چیزا و این هم اضافه شده این مبنیست نیست اینکه که این نوع تصویبی ما در خبر قادل باشیم چون تو, تو بست تصویب رو تم متعرض میشیم بست تصویب رو هست کردیم اصلش مال خبر نیست اصل بحث تصویب در دنیای اسلام مال خبر نیست اصل تصویر در این بوده که صحابه مطرح کردند که مثلا انسان اگر مثلا خود صحابه حکم رو در کتاب هستونت و کم شد را اشمار کردن یا اشمار کردن یا فقیقی یکی حکم رو فهمید آیا این حکم مطابق با واقع این جرم میشه در واقع به واقع ترقه همین فتوای فقیقی آنه. که دیروز توزیر دادید اون رفتی به خبر نداره بحث خبر سوش مفتح نیست بسید یه چیزی شبیه تصیب در خبر چون ادهیم بحث تصیبی که در فتوا بوده در اشتار بوده به خبر هم تصریب دادن ولی بله این بحث بحث تصریبه پس بنابراین ما در خبر دو نکته رو در نظر میگیریم یکی مقام ملاکات یکی مقام جعل. چون ممکن است کسی دیگه ما طبق خبر جرل نداریم ممکنه سوال اینه وقتی خبر آمد یا جعل میشه یا جعل نمیشه اگر جعل نشد نرو ملاکات اگر طریق صرف چون تریخ و ملاقب هستنی اگر جمع شد دو سه حکم میشه در واقع حلام به حضرت به خبر حلام یا برد نخلی لازم میاد که در یه چیز دو سه حکم باشه حالا این دو سه حکم در واقع حلام در زارم حلام دو سهلیت یه شد این برید زاری درست شد یا بگیم در واقع حرام در زارم بردش نقیزه این نمیشه. یعنی یا اجتماع مسئله میشه یا اجتماعه زده پس فنابراین این دو تا معمول است اشکال ملاکه چیزه اشکال اجتماعی چیز دیگر در اجتماع در اشکال ملاکه اشکال ملاکه کلمات اهل سنت آمده که تبدیل هم میشه چون نگه سنون در خبر چیزی بایش مختبی رو اشکال معروف این نگه آمده بگه تبقه خبر جهر بکر میشه حالا ما اسطلاحا در الان لغت اصولی ما خیلی راحت اینجور میگیم یا خبر فرید صرف یا موضوعیت داره خبر یا طریق صرف کار نیمی کنه. فقط طریقه خب اگر شد خلاف واقع شد مصدر واقع پرس میشه یا موضوعیت داره موضوعیت این چی؟ یعنی طبق خبر جعب میشه میشه موضوعیت یا سببیت به طریق آن سببیت اگر سلسله خبر جمع شد یا این جاب با با یکی میشه دو تا میشه یک کدوار دو تا بود مثلا یا مخالف میشه متضاد این اشکال و الان از این زاویه خب ممکن است بگیم که اصل اشکال آغایان از اون زاویه اول بوده که خلیج صرف موضوعیت نگاه نکرده در اگر موضوعیت نگاه بکنیم باید ببینیم عقوالی که در مساله هر چند تا خلاصو بوشیم این چه به اشکال و شده به اصل مطلب و تصدی که آرون در این جا داشت در کلمات عصاب ما تدریجا این بحث همون ملاحظه که ملاظه فرضی خوندیم کلمه امکان امکان و جواز و امتناع تعبد و این امکان مرادش ما بیرون از هر کلمه مستفیون بحث ما از این مراد از امکان و امتناع در اینجا اونه امکانوه اعتنال تعبولی است در قطعه که ما غالبه از اون موادس اصول وقتی از صحبت اون مثلا صحیح هست در اینی جایز جایز نیست اجزا میره اجزا مثلا احکام مبادی احکام اینا غالبا ما عقل عملی رو بکار میبینیم غالبش اینطور یعنی دست ما راجع به اقل عملی است گایی هم خوب عقل نظریه در اینجا مراده از حکم عقل حکم عقل نظریه یعنی اگر یه قانونی آمد یک تعبدی قرار دار این قانون نمیشه زیربنا داشته باشه، تعبد بدون زیربنا ها که نمیشه. این باید ریشه هایی داشته باشه. این اگر ریشه ها داشت میگیم این ریشه با این ریشه نمیخوره دقت بکنید این زیربنا با این زیربنا نمی‌خوره. این مراد از امتناع در اینجا اینه که من دیروز ارز کردم و دردام اهل سنت مخصوصاً اشائر خیلی راحت از شبهات مؤسسه جواب دادن چرا؟ چرا اولش این بود که میگرد احکام تابعه مساله نامخوصه دن این خبر اگر جلوه بود مخصوصاً از این بوده اون آهای اشائری جواب میده احکام تابعه مساله نامخوصه دیستن بگیر راحت جواب خیلی راحت. دو احکام تابع طوسی مسائل مخاطب در خود جعل نه در واقع ما مسائلی واقعی نداریم. اما اشاره ممکن مسائل ما هست. در اونجا ملاک در خود جعل نه در مجعول ما به مجعول نگاه نمی کنیم ما اصلا به اون نگاه می که وجود ملاق داریم. خود جعل اگر ملاق داشت کافی ما کاری به نداریم که مثلا وجود یا این چیز یا استعمالش یا خوردنش یا خوردنش مثلا ملاکی داره ولذا خود دقت بکنید معتذله روی مبانی خودشون تفسیر رو که از قانون ارائه میدن میگن اگر اینطور طور شد میمیشه بیاد شارع نیمیشه سر ولذا من دیروز این مقدمات رو عرض کردم یک احکام تابع ملاکات باشن دو ملاکات امور واقعی هستن با طریق عرض نمیشن سه خبر یا به تحبیلشون در اینجا زن طریق صرفه شاهات طریق شن شما طریقیته میمیشه نصد جهات محسنه و مقبله بشه اون دقیق بکنی مثلا صرف حسنه اما اگر صرف منشای اختلاف شد این یک جهات محقبه هست اختلاف یک جهت محقبه هست کز قبیه اما اگر که منشه یک کار خوبی شد انقاض نبی شد اینجا مؤمن نجات مؤمنی شد اینجا جهت مخبهه بهش آمده این بحث اینه که اونی که شعنش طریقیته اونی که شعنش طریقیته این نه محسن نه مخبهه اونی که شعنش طریقیته مثال ارخوی مثال آینه بیگه فرص این یک آقایی دشته تو آینه هم نگاه نکنه دشته فرص میکنه. یک آیه زیواز تو آینه هم نگاه بخوایی نکنه زیواز آینه عرض نمی کنه آینه چون طریقیت سرفه مرعاتیت سرفه هرچی که شهنش طریقیت هم مرعاتیت هم اشکال دوشن شد این جزه جهات محسن و مقبله نیست اگر مصرحی از لطف این طریق سرف نیمتونه مصرح روی دستیاره اصلا جزه جهات محسن نیست جزء جهات مقبله نیست روشنجو. پس بنابراین خود اونی که شهنش طریقیت جزو جهاز ما هست مقبله هی نیست مطلع بعدی شاره مقدس و اون مساقه هم مفاسد اهتمام داره چرا؟ حالا مثلا این چه نفتی داره؟ شما ممکن است این اونجایی که شاره احتمام داره بعد علاقه میاره در قرآن یا سنت اونجایی که با خبر وارد آمده جزو اونهی نیست که بشه اهتمام باشه این مستدل نه. شاره به همه بگه پس یه مقدماتی باید تیه بشه شاره رحمه اهتمام داره شا. شاره میدونه که اگر این آدو رو گفت تفریح میشه می و جبران هم نشده و این تفریح مسلحت بلا جبران قدیه یعنی ما این مجموعه رو که جمع میکنیم البته در کلمات که که شاره اغلال هم همیتونه یعنی به نظر من این جرد حقلی در قوانین و اخلایی هم میاد. یعنی اگر قانون بیاد بگه شما به پرامتر مراجعه کنید و این خصوصیات باشه خب درست نیست بله اگر قانون گفت که مثلا شما گیر کردی، به قاضی مراجعه کنید دقت بکنید چون قاضی جز جهات مخده هست چرا چون قاضی شهر نش رفت و خصومت قاضی شهر نگو رفت و خصومت جز جهات است یعنی خود را خصوصا یه ملاقاتیه. ولو قاضی اشتباه وکنشون خصوصا بر مداره ملاقات. هست خوب که بگات، اونهای این مقدمات به این صورت میگن با این مقدمات نه فقط شاره، حتی آدم‌های عادی هم نمی نمیکنه. اگر این مهاسوا در بینید باشه ما هم دیروز یک توضیح دادیم، مثل مارو موضّعی دیگه دادیم. توضیح دادیم که آ این نکته‌ای که اینا گفتن، این درست. ای ای خب ما اینکه در که این مقدمه تمام سالم بمونه اگر این مقدمه قابل خدشه باشی خب دیگه یک دونش قابل خدشه باشه کافی مثلا اولی مقدمه‌ای که اهل سنت منکرن یا ما قائل مسائل مفاصل نیست اینجا رو تمام مقدمه تام میشه ما مصلحتی قائل نیستیم کتابیشه مصلحت بشه یا جلب جلب مصلحه بشه نه مصلحت قائل نه مصلحه قائل مطلب تاهم کرد و بردی هاشون قائلا بیدیم که خبر طریق صرف نیست موضوعیت هم داره پس اگه موضوعیت پیدا کرد این اشکال همونتبی میشه چون موضوع که پیدا کرد وقت منشعه به اصلا تر بود اینه که باید جوابها رو ملاحظه کرد که این جوابها رو کدوم از این نکاتی که بنده واضح عرض کردن واقع شده. و از کلم هم قدما متعروسه و همین متعروسه این ما و اجمالا کلمات مرحوم استاد رو خوندیم ایشون مسئله تصویب رو و اقسام تصویب در اینجا رو که با طریقیت نمی سازد مسئله با طریقیت نمی و باید این نحری توضیح میدادم که به نظر ما خیلی تا توضیحات باشندن حالا به نظر ما جواب اساسی در اینجا اینه جوابی که در اینجا میاد خود طریق به ما و تاریخ این راسته منشأ مصلحت نیست این جزء جهات محسنه یا مقبله نیست درست و که ما مطلب و اصولاً احزابی دیگری مصلحت کردیم ما اصولا ما با شدیم اون چه که ما به عنوان داریم تماما تعبدیه حتی خود یقین اینا در ذهنیتشون این بود که قرط و یقین و اطمینان رحم و عرفی حجیتشون تعبدی نیست نه هجیت ناهم تعبد فرق نمیکنم حجیت یه مقوله اجتماعی ات غیر از من دوسه روز تویح دادم آغایان هجیت با کشف یکی گرفتن تصریح میکنن اثا بحثشن سر حجیت سر کشف و لذا چون کشف در قل ذاتشه ذات نباشه ذاتش ذاتی بالاتر و لذا هجیت در اونجا ذاتی میدونن این قرت میدونن چرا چون میگن خب خیلي واضحه ما هیچ ابهام نداریم که این سیگار مثلا زرر داره وقتی به این موضوع پیدا رسيد اقدام میکنه چیزی میگه ه واسطه بین خودش و واقع احساس میکنه به واقع رسیده میدونیم به واقع رسیده, به واقع رسیده. که اینا آتشی خوب اجتناب میکنه این تصویر که این آقایان از این مسئله ارائه کرد ما از کردم قرط که از صفات نفسی انسان خود جید تب تب تبیر مروله به اون تبیر سادش ما یهتر جبیهی مولا و مولا علیه یعنی ما یهتر دولت بر مردم مردم بر دولت این جبیهی اونی که من بیاده اعتبار در کسی که لیزه بیاده این قابل احتجاج باشه و از این احتجاج مرجعش به اون انتقاش صورته اونی که داری و محرکه اون انتقامی صورته بحث عمل درسته اما عمل به اصطلاح ما از اقصار بود اونی که در حجی ید و در تنجز وجود داره که مرتبه دومه بعد از جهره چون از یک مرتبه جهر داریم بعد از جهر مرحله انزال یا اقلاق یا ارسال رسول داریم بعد از اون مرتبه تنجز داریم که وصول اون تکلیف به مکلف باشه این مرتبه تنجزه حجیت ناظر مرتبه تنجز این مرتبه عرض کردیم دو تا نکه داره یک تنجز کبرا که بداریم خمر حرامه تنجز سقرار که بزنیم این ماده خمره ما عرض کردیم این در ذهن آیان اینطور آمده توی مرتبه تنجز مقنن دخالت نمیکنه چه در کبراش در سقرار ما عرض کردیم اینطور نیست در سقرار چرا دخالت نمیکنه اما در کبرا میشه چرا چون اون ادراکات تردی فردی مختلفه اگر واگوزار بکنه هر کسی به علم خودش خیلی بلبل میان میاد درجات ادراک مختلف افراد مختلف هستند بعضیا ساده لوحن بعضیا زود بعضی باور میکنن نمیشه مرحله ترجح که مرحله اجتماعیز و نظام اجتماعیز این واگوزار بشه به افراد در بخش کبرا در وقت سغرای شرا چون یک نکتی اغلایی هست این همه که نکات اغلایی هست نینی که حالی باشه در نکتی اغلایی نمیان قوانی متعرض سغرای آزا خصوصی هست بشن تا شعن قانون نیست شعن قانون میشه باقی داری قانون اصولا نیست که این آب این مایه ایش آب یا بوله یا سرکرسی کارش نیست کار قانون نیست ذاتی بودن هم اول می رسیم بله بگه ذاتیری می دونی نتیجه همینه چون قاعد نیستیم به پس اینطور که شد در حقیقت چون صفات نفسی میاد شاره از شاره یا اغلا ما معتقلیم در درجه از خود اغلا تخیر یعنی <تصفيق> خود اغلا آمدن اون صورت نفسی رو حتی اگر پرت باشه میان محاسبه میکنن یعنی قفع تو اگر از طریق متعارف آمده قبول به الله خلا این که تو بگیم هم دارم شد نه این که می... منشه قفع که بوده میان منشه حساب میکنن شاید در نظر قغلا تا هفت سال هشتا درصد نوست درصد نوست درصد که مقدار مطلوبه شاید هم تا اگر قواعد فرایدی رو که منشأ قطع شده اوغلایی باشه قبول میکنه اون ده درصد لازم نیست ده ده درصد هر فرد بفرست یه فرق میکنه خب بله، در مطلقا بحث همین اون 10 درصد این که قطع شخصی و <تصفح> ما عرض کردیم اصولا این بحث که شیخ گفته اعلام انن المکلف این نبوده در مسأله عبارت استاد استادیشان سال مفاتی اعلام انن مشهد اضافه برسه و حسن الله و ایشون برد و مکلف بناشه این شد تا آمه ناس هم اگر بحث به حکم پیدا این قردیم هجه بسید او چه عرضی سو داره قرد پیدا بود چه عرضی داره پس بنابراین قرط آمد یک نور اول تقید اغلایی پیدا کرد این در عامه قوانین چرا قرط رو بشر حجت کرد چون وضوحی از اون بیشتر وجود نداشت و اگر بنابود قرط حجت نشه زندگی رو هم میخواد مثلا آب پسر شما من اینجور گفت نه تو باید میادی از دیگر سوال میکرد از ده نفر سوال که تا, قرد، قرد، قرد، قرد، تا مطابق با واقع باشه این سوال سوال سوال میگه من دیگه مثلا پسر شما از این ولانه دعصری ظاهر میشه مثلا سقه جدید جلو کرد مثل زورا مثلا گفت قبول کردی یا قرض قاتل شد شد که قبول کرد قاتل شد این قرد که مسلما بشه به که تو اغلبی قبول میکنن اما اگر نه مسلما نبود بنویس که این قابل قبول نیست و اگر نداشتن بگم قاتل حجات نیست باید دیگه دانه دانه دررسی کنی. همیتونی که مرحوم آراشمان سین اسفانی فرمه اختلال نظام بازه واقعا اختلال نظام بازه یعنی اگر برای بود یک صبر نفسی رو حجت بدونن که بودش سیر بکنن حالا قطع دیگر از دو قدیتر چیزی نیست با مخلوقه قطع این قابلیت رو داشت بله لزوما هم یک چیزی به شورا هم ممکن در یک جامعه در این معنی که بسته‌ای در یک حزبی در, در یک گروهی حتی قطع هم حجت نباشه این امکانی مستحیل نیست اما این ممکن در یک دلی که بیش از هزاران تو جامعه های بشری اینطور جان دادن نمیخوره میگن تو قطع هم پیدا نکردی نباید اعتماد میکردی باید اینقدر تجربه و تکرار و سوال و جواب میگه که این جو موذبل بی یقین واقعی واقعی که تو واقع رو دیگه اصلا کاملا بشوارت دو زندگی معنوی بوده، این اختلال نظام داشته. اصحاب دقیق به نظر ما سر جعل حجیت همین مسئله اختلال نظام است. اصل حجیته و این یک تغیید اوغلایی دو ممکن است در بعض از قوانین غیر از این تغیید اوقلایی تغیید دیگر پیدا بشه. مثلا میگه آقا من قصد به قانون گذاشتم، میگه نمیشه شما فقط به قانون اگر همی نوشته که در سر مجلس آبیزون کندر در مجلس اگر اونجا بود و الله هم بگه فقط دارم میشه این کارو بکنم قانون انجام بده اون ممکنه. ما از در بحث قیاس این طور شاره گفت اگر از قیاس هم پیدا شد اون ارزشی نداره دقت قطعه اون هم بیپایده هست حتی اگر بحث برسون پیدا شد پس بنابراین. یکی تاشای پیدا کرده در در میجار در ارتکاز عام در بحث حجیت که از طرق متعارف باشه دو تغییر پیدا کرده در نظام های قانون معین مثلا در اسلام که از سیاست نباشه اصولاً در اسلام تغییر پیدا کرده از غیر از سماه صادقه ای و اونها نه کتاب و سنت نباشه راه باز از کتاب سنن غیر از کتاب سنن حتی اگر غرف برای شما حاصل بشه اون ارزش شده این در تقییدی در قانون کن در شرح خود بنابراین خود قدر بفرمایید خود جعل حجیه جعل در این جعل اغلایی این جعل تصریح بشن شده اما ارتکاز عملیشون بر اینه خود ارتکاز اغلایی بر حجیه خود شعبودیه مراد ما از تحبول یعنی یک نقطهی در نظر گرفتن که اون مسئله لزوم اختلال نظام به خاطر اون نکته آمدن گفتن ما یه رو میکنیم لازم نیست دیگه شوهی داری سوال بکنیم سوال بکنین تا به محن واقع کاملا درستی هیچ شبهی نباشه ولی احتمال یک درمیون مثلا و کاملا واقع رو لنسی بکنیم هیچ این چیزی در میدان اقلا در باقر وجود نداره احتفای کردن به بهترین صفتی که برای انسان در مقام کشف قبله اصلا با این خیلی حجب نیستن پس اشکال اساسی که این آیان کردن برای اونها بارده اینه خود خودترد هم احتیاج به جهر دارد از جهر که علاقه است. و, و نکته داریم اینطور نیست که به لحاظ ترکیت صرفش باشید اون ترکیت صرفش زیر بنا هست اما باز آمدن اختلاف نظام رو در نظر گرسه پس بنابراین نقطه احساسی این شد از اینجا اختلاف ما با اعلام در نیزه بنظر به نظر ما نقطه ای که در باب خود جیهته عباد از اینه و اون یک نوع مثلحتی باشه که جمع بکنه حتی در خود خط خرزن در خود. و مثلا فرسین در قیره پرسین قول محسیب قول فرسین قاضیب قول والی قول فرسین خبر واحد اینا هر کدوم داره نکات مختلفی هستن که اون جعبش میان قالبا هم نقطش نقطه تسهیل و رفع خصومت و یعنی قالبا نقطش نقطه اجتماعیه خوب دقت بکنیم قالبا نقطش یک نکته ای که باید به هیئت اجتماعی من که گفتم امس کردن مفردات برای خودشون یک حکم دارن هیئت اجتماعی حکم دیگری داره این دیوار مفرداتش که حکم مثلا آجرهاش یک حکومت داره چرا محکم باشه چین باشه اون هیئت اجتماعیش به صاف باشه حکم دیگری میشه؟ ممکن است آجرها شنکه کشی باشن دکل از هم بیشتر از هم بیشتر از باشن. اما دیوار رو ساق درست کرده. ممکنه بهترین ما آجوه دیوار کش روز کرده ما هر اینه مسئله تعبد بود اصولا جایی که میاد در قوانین دائما نقطه اش نقطه اجتماعیه از نه و دو تا یعنی این خودش یک مسلحتی داره مسلحتم قائمتون برسه خود این مسلحت اروز این مسلحت در حیعت اجتماعیه نه مفردان. مثلا کاری گفتن خمر نخورید چون خود خمر مذهبی به بدن مثلا آثار می کنه نخورید خون کن این مال مفردات به اصطلاح مال آثار خودشیم. این که آگاه به این که خبر زهر را قبول بکنید این مال هیئت اجتماعی مال مفردات نیست پس دو معنی دو مصلحتاً به اون اشکالی که اینا کردن که لازم میاد مثلا تحریم حلال بس. نه لازم نمیاد. این تعبیر مسلحت سلوکی که اخیران در کنمات اصلاح خونده به شما رفت این مراد از مسلحت سلوکی که برنامه شیخ خواهد دارن. اگر این معنا باشه خیلی واضحه، ما هر که میشه سلوکی یک تفصیل خاص به خود داریم، برین. سلوکی عبارت از مسلحت نیست که متعلقش اجتماعی است. و لزوم اندکاد رو با اون اصطلاح واقعیم نمیکنه. جای خودش محفوظه. خودت بگو. مثلا یکی از مسائل اجتماعی هست در جامعه اختلاف نداره، نه با حدی درمیاد. این باید بحث بشه درو. این خودش مسئله برای این کار عقلا احتیاج, احتیاج به استدلال نداره. اصلا عقلا بنا که در جامعه قاضی قرار دادن که اختلاف نداره. این مسئله از اینطور نیست که با مسئله واقع موندک بشه مثلا بگیم مثلا خبر واحد اگر گفت این واجب و در واقعم واجب بود موندک میشه یکی چیزی نه از این اندکاتی مطرح نیست اندکاکی این با خود یعنی اگه شما پیش قاضی قاضی رفت اختلاف کرد مطابق, بود مطابق بود بسیارفو. بسیارفو بود؟ اختلاف با واقع بود بسیار خوب مطابق با واقع نبود بسیار بود اون بسیار با قاضی تا پیش اون بسیار خوبه قاضی چون اختلاف رو برداد اختلاف رو برده مندک کن نمیشه اون بحث اجتماع مثلی این کنان گفتی خوب رحل شد باشه اندکات هم پیدا نمی کنه. چه شما قول بازی مطابق با واقع باشه اختلاف برداشت مخالف با واقع باشه اختلاف برداشت چون مراد اون حدیث ببارکم الاس حدیر سهر از شهد الحاکم فعصاب در اجرام. این این تا عجرشی که یکی مسلحت واقع رسیده یکی این مصلحه سلوک به دست این مصلحه اجتماعی رو و این اختعف لهو اجر واحد. به واقع نرسید، اما اختلاف واقع اختلاف قاضی در حکمی که کرد، حکمش مطابق با واقع نبود. درستا، این به واقع نرسید، اما چکار کرد؟ آمد اختلاف و برداشت. برداشتن اختلاف بودش این نوع مفلحته. این متعلق جامعه است. اندکا که در مفلحت واقعا هم پیداده می کنه هم موجوده دقیقه این مصلحت مال چیه خوب دقیقه بکن نه مال طریقه طریقه مفلحتی نظره مال اون تحبهدی که در قطع هم بوده یعنی قطعه هم که آمد حجب شد چون تصفیل بر مفلحت اختلاف لازم نه نظام بمونه جامعه بمونه جامعه که بخواه میگم قد هم خود جدید اولاد اینقدر با دونست داره ما بهم میکن جامعه به هم بریده دقیقه برمانه پس بنابراین این طور ما فرض میکن مثلا اگر امام ساده موسمون تمام شیعه ها تکتر بیدن تا مدینه داردن خب تو باید باید این که اونجا مثلا فیزیک به مختصات میگه من داره واقعاً کوفه میشه اینقدر از حال مختلفا بین من داره اینکه در بینم شک بکنه آخه این داره اقوام مختلفاشون نروه هاذا مثال چطور پیش من که هر یک مطلب از مشمول میشه بیرون که میشن کلا یوری بره مت آره هستند ریاست این میگه منو راه راه این مشکل من میخوام که که جالب سوال کردم چیه؟ فرمون گفتن که این زراعته نهیمه یعنی این اختلاف و برداشتن این سهولت هم این که مثلا میگه آقا بین آقا مراجعه کن نه اینکه که خود طریق مسلحه داره جرم مسلحه هست داره خود این جرم یک مسلحه اجتماعی هست و این ترخون این مسلحه اجتماعی هم با مسلحه فردی اصلا در یک مهور میستن یه دفعه خود خمره خمره حالا مضر برای بردن هست یا نیست اون مثلت خودشه. یه دفعه در این که مثلا زراره یه خمره حرام حالا یه مسلم شبیه اون یا سیگار کشیدن یه دفعه خود سیگار کشیدن یه دفعه مفتی فتوا میده این فتوای مفتی یا حکم قاضی یا خبر ماهه این یک نقطه اجتماعی داره که با اون نقطه اجتماعی ما روش حساب میده. این مسلحت اجتماعی این اصلا اندکا با واقع هم نداره محورش هم تا کرد با نداره نه لازم نیاد تفریف مقصده نه لازم یاد... ها این مسلحت جوریه که اگر خدای نکرده مطابقه با واقع نبود تدارات میکنه سر تدارات اینه یعنی یجور لعن بعد مثلا قاضی گفت اینه اول مال بلانه قاض اشتباه کرده خطا بوده به هر حال دو تا مطلق یک مرک مالک ازش گرسته شو دو اختلاف جامعه برمسه شد تدارکش میکنه اختلاف برمسه که نه, نه اون به جه خودش میمونه با حال خودش مطلق واقعی با حال خودش مصر واقعی با حال خودش. خودش. خودش مونه اما تضارف میشه به حاضی حیعت اجتماعی ب... حیعت همین حیعت همین ممند مقردات بود نه خیلی واقع هیت اجتماعی هم دارن همین بحث دارن نه دو متعلم دو متعلم دو ببینید شما این دیوار در نظر بگیرید مفرداتش یک داره هیت اجتماعش می خوب داره. و نظام ممکن است این اصلا اندیشه که کمونیستی یا سوسیالیستی هم نگیران تمام مهمتش رو هیت اجتماعی مثلا دیگر توی این جامعه فاصله بین طبقات مثلا 3 برابر 5 برابر حالا کار داره اون طبوقه اون می‌کنه بعد دفعه خب بعد دفعه بعد وقتش الان فهمون که طبقه شما 4 تا یا 5 شده او از بیشتر به حیات اجتماعی نگاه میکنه. به خلاف اون نظرهایی که اون فرد میگه اصلا چیزی به نام اجتماعی ندیم هر فردی خودش پولدار باشه کافیه می‌خواد هیئت اجتماعی غریب باشه نباشه می‌خواد حیات اجتماعی خوشبخت باشه نباشه اقتدار فردی کافیه این بحثید میکرین که نه اقدار فردی هم خوبه اما باید یک اقتدار کمی هم برسه که اون هیت مجموعی اون محیط اجتماعی هم داره صفت خاصه شد لذا چون بحث چون ولذا ما هم عرض کردیم تراره نه عرض حجیت یه اجتماعی شما سات گوشه یک بریم فی یه خالی زنید اینه حجیت من ندرستم شجای حجیت نقطه رو که ما حرف کردیم حجیت یک مقوله اجتماعی تا مقوله اجتماعی شد باید عربش های اجتماعی حفظ بشه اجتماعی. اختلاف... نه من دقت بکنیم من حرف اینه حجیت چون یک مقوله اجتماعی میاد اون هیئت اجتماعی رو در نظر میگیره و این موارد شرف میکنه یه چیز کسیره میفهم به اختلاف جاه مختلف نه به راجل حجیت... چرا مگر سلی مولا علنا وقتی که حالا که اول کینم جزاست نه ببینید اون حقیقت یافی اون یافتی که باید قبول بشه نه کشف تنها کافی نیست که میشید کشف کافی نیست تا نرسه به امضای به و امضای کافی نیست ما وجود ذاتی نیمیم کاش بیم. لا یه بگو آقا من قرد برم کار کرده شد. میگو بیخواد کرده از من در کار کرده شد نماز جبر بازی. یا از کیسی سمع نخود در ثابت میشود. میگو بیخواد ثابت. من گفتم. زیر بنای وجود. حالا من همین گفتم. هم کاش زیر بنای حجیت هست. اما تمام وجود. آه، <متصف> یعنی هجیه خوب درد بکنیم یک مقوله اجتماعی یعنی یعنی شما تنها بودین مثلا شما یقین یعنی پیدا کرده این ناپره ممکن است این نه من آزمایش کنم چه رایدی یا آزمایش برای فرد مشکل نداره برای فرد؟ هی بخواهد آزمایش کنم اما اگه برستی به جامعه جامعه رو خراب میکنه سلید در امور همهی ها بلترسی